که داخل ما در قالب شرح, او شرح اونیه که باثی اونی که شده از مستن در حرکات کاری بگید نه بدون مثلا الان کلمه مثل ناصر با کلمه مثل یه قطب و یه قطب با همدیگه هم هموز هم چون اول موتا اونم اول موتا هر نیک ساکن اونم ساکن سوم هم موتا هر اونم موتا هر نیک معلوم؟ یعنی در حرکت و سکون نگاه میکنیم کلمه نویزه این بالا در حرکت و سکون با هم موافقت کنن حرکت چیه؟ این وزن عروضیه اسم فائل هم وزن عروضیه به نوزاره. حالا اگر یه چیزی وزن عروضی رو داشت وزن تصریفی بیاد، دوش نید. مثلا زاره با یزرگو زاره با یزرگو وزن تصریفی چیه؟ دارم آه اما از بازم تصریفی کنو به اونیه که قیل از حرکت و سکون در خود حرکات هم معاقل دیگه چی باشن محاقل بکنن با یعنی اول متحرک به دوم این اولیه متحرک به فرد اون اول متحرک دوم سکون اینم سکون سوم با متحرک به زمه اینم به زمه اینو بگر بازم میگه اسم اسم فاعل که هم وزن عروضی مزارع گذشته این خیلی از جدول خارج می‌کنه یعنی اکثر صفات مشبهه خارج میشن چون صفات مشبهه اکثرا هم وزن مزارع خودشون هر بگیر بگید نیست مگر بعضی‌هاشون مثل متفعل و نفس طاهرالارض که اینا دلالت و ثبوت میکنن صفات مشبهه چرا چرا مشتق شده بگن و نهوا فاعلی تا اینکه دلالت کنن بر انجام ده اون نستر فایل اینجا انجام دهنده ما زارب رو درست میکنیم تا اینکه که دلالت کنند بر انجام دهنده یه زرم یعنی زدن این که رو ایجا بود این میده در در فایلی اسم مفهول رو خارج کرد چون چون اسم مفهول دلالت بر فایل در این قبلا اراده چی شده بود اراده انجام دهنده انجام دهنده شده بود زمینی که بهش برگشت ازش اراده فایله نهبی شد اینوش میگن تو عوضت سمت استخدام که از یک نفسیه اراده بشه از زمینی که بهش برمیگرده اراده میبسه من شهر در شهر یه ماه رمضان رو دید روزه بگیره، اونم خودشه بگیره. منظور از منشئ در شرعه این چی؟ منشئ در الهال اشعره. از, از شهر اراده چی شده؟ الهال شده. چون داریم صبح به رؤیته و عصر به رؤی. کسی که اقامه ماه رمضان رو دید روزه شروع کنه. بعد میگه چی؟ بلغیثم هو، اون که بعد میگه شهر ازش چی شده؟ اراده الهال شده. یا اراده کل ماه رمضان پس این کتاب رو گذاشتم گلستان چون که گلستان محل ملال نیست آه. اینجا منظورش از گلستان اون گلستانه باوستان بعد میگه خصوصاً که دیو باچش خصوصاً که دیو باچش مقدمش به اسم محمد زندی فنا هست منظور از این دیو باچ اش چیزی بلکه گلستان به اعتباره به رساله این صلاحیت اضافه شدنه به فاعلشو نداره اما چی؟ اما اون طرف صفت مشبهه به فاعل خودش چیه؟ اضافه میشه حسن و بچه تاهر و ارزه اصلش بوده تاهر و ارزه حسن و بچه وقت دبابه باشه اضافه به, به خودش نمیشه میگم چون توقعه اضافه شیب نفس داره توقعه اضافه بگیم شیب نفس داره یکی یکی نم به خاطر که اگر ما مثلا برگشتیم گفتیم جا زاربون مثلا جا رجلون زاربون عبون جا رجلون زاربون ابو. الان عبون فاعه اگر اضافه کردیم گفتیم چی؟ جا رجلون زاربون اینجا نه اینجا مقدم هم باشه عمل میکنی مثلا انا زاربون زیدن الانه او قدم انا زاربون زیدن الانه او قدم اینجا حالا چیه؟ مقدم هستو اعمل کرد تکر کردیم مبتده ها به مناعه رسته مقدم هم معخرم معخرم باشه اعمل میکن. همی میکنی همین مثال نبکنی چی؟ انا زیدن زاربون زاربون الان او ظاهر باشه اسم فایل عمل میکنه اسم فایل اگه ظاهر باشه عمل مثل میذارم جایی که چیه ظاهر داریم میگیمش مقدرم باشه عمل میکنه ظاهرن و مزمرن ظاهر باشه عمل میکنه مزمر هم باشه بگی عمل میکنه مزمر مثل چی آن زیادان ظاهر زیداً منصوب است به یک ضاره مؤثر به تفسیر این زاره اعلن زیداً ضاره به فرمان او گفت ضاره باشه عمل می‌کنیم مصدر باشه عمل هیچ فرقی یادتونه توی بحث مصدر اگر برگردید گفتش که برخلاف که مصدر مزمر باشد مزمر با خود گلاجرال بود یعنی چی ضمیر باشه مثال صد سر گفت هروسی حسنون فواب بعضی ها مزمر هم اونجا رو به معنای مقدر گرفتن گفتن مستر اگر مقدر باشه عمل <متحد> نمی مثل ممنون دیر زمان و درست من هم اگر مقدر هم باشه مزمر رو اونجا تفسیر کردن به چی؟ به مقدر من اونجا نم گفتن اینجا نم گفتن که اینه بفرگذار اونجا رو برگرم و مزمر هم چاری هم علا سیغت هر اصلی یکه اسم فاهر یعنی و سیغه اصلی خ من معدوم همه ها یا این اصلی خودش قدور کرده باشه از اصلی خودش قدور بکنیم چی؟, چی؟ کمزرت مبارده سیغه مبارده باشه سیغه مبارده هم میگه فعلی؟ نمیکنه اول بکنیم مثل چی؟ مثل ولی استفهامن و ولی استفهام شرط دوم روز و به دوبار استفهام بیاد و از طرف دیگر معناش هم ها رو عندم هینایزن یا کولو لفظ شبی هم به لفظ فعل میگیم چرا عمل میکنه میگه زیرا این انجام که از مازی دست کشیده هینایزن یعنی این عز کان الح مسیهی به معزه زمانی که از مازی دینش دست کشیده یا کولو لفظ شبی هم به لفظ فعل لفظ شبی هست به لفظ فعل در چه چیز به همراه لفظ شبیه به لفظ فعل، کلمه به حال فعلی که دلالت میشه با اون به حال استفهام، حالا خودش وقتی معناش معنا حالو استقبال میشه، لفظ معناش باید هم میرسونه به مزار. به لفظ فعل و خبر مطابق، اون فعلی که دلالت بر حال یا استقبال میکنه کلمه نور میگه نه یعنی فهم بعمل به محزن. اگر از ماضی دست نکشونه چطوره میگه فهم کن ان به محزن. اینه اگر صله الف لام شده مثل زیدون از دار کو امسه حتما و حتما عمل میکنه چرا چون الف لا منظور ما بعدش چی می‌خواد سله سلهش هم حالا شفه ف اومده در واقع چون الف دام هیکله چی هی چی بوده حرف بوده ما مجبور شدیم شفه و بدیش بدیم و ادا باجش می‌دادیم به عمل نبید یه عمل آمد. عمل نفاقت کرد خلاف ها نمی کسایی بعد خلاف جناب های کسایی که گفت مازی هم میتونه عمل کنه بعد استقلاق بکن با اون آیه که تو کتاب سمدیگی خونه چی بود و کل بگم با ستون زراعیه بروسی بگمید دسته از خواب کلبه با ستون قبل بوده مازی بوده ولی الان داره اگر شما میگونید باسه تکه کرده به ممتدا کرده و نز کت زراعی درسته محنهای اصلیش محنهای است ولی اراده شده حکایت حال مازی یعنی زمان مازی رو ما خواستیم به شکل بگیریم به شکل تصویری ارخان به شما نشون بگید مثل که یک فیلم رو قبلا برداشتن ولی باستان زراعی همین وزی برای خاطر اینکه که مخاطر الان قرارش بدیم در اون شرایط، اون شرایط رو به شکلی براش توسید میکنه که این کار الان جگه چشمش داره پس در واقع اینجا کلمان باستان, باستان در اصل مازیست. است اما مجازن چیه الان اونی که ازش اراده شده چیه زمان حاله حال حقیقی نیست اما حاله آیه رو برید دیگاه کنید داره نقله با هم نقله یعنی چی؟ یعنی ما اینا رو این رون رونی کردیم یعنی نمیگه قلب نا هم برای که یه طرف همیشه نخبند میگه نقله با هم میچرخوندی به که من با رو چندین سا یه طرف این نقله با چیه؟ بله مزارع؟ خب این دیگه زمان زمانه چیه؟ حال، اما این چرا حالیه؟ شن. و ان ببینید انو نوشت چرا نوشت و ان واسه خاطری که بگه بدیه ارفس به جای چی کانه انکار ان موسیقی به منزله اون یه فکشن و بدیه ارف به جای اون اینها دار رو خبر مقدم ز با صدای مؤخر امر مفعول زاره چون مستلزم فاصله است که بیاد بین ذاربون و امرن چیه فاصله اندر چون میدنیم که بعدش اسم ظاهر یا زمیر وارز بیاد میشه مطلعه فسیل اون حرف نداه یا عمل کند در حرف بگید یا حرف نداعه. هر به تعدیل و, و نداد و مستدل الاس تنظیم میگه و می هر او هر فن ادایی نه رجا طالعا جبل طالعه یعنی باردارنده ساحل ای باردارنده کورا منادای شبیه به مضاف مثل یا بچی هم امتدلان یا حسنن بچو اینجا الان عمل کرده جوانم رو چکارش کرده نصفش داده ای بار رو رو میگه این تاله انتکه کرده یا و به من ها رو هست جوانم رو چکار کرده نصب و خواهدش هم درش مستده یا تاله میگه و خوبم این قسم نهت محضوف من بود ملاجعه میگه بابا اشتباه نکن اینجا تکه کرده به چی؟ به موضوع از سفتنه سفت بیاد لذا در صورت نصبی نیاز به این واق نیست در صورت نصبی نوشتنش از نظر رسول خط صحیح نیست او جان کرده به رجل من رقم داده به زمیر مستطر که برمیگرده به رجال رابطه صفت از به موصول و زیدن چیه مرمو برو پارید به رجالی اینجا میدونید که دو تا شب لازم داشت یکی چی که که کردن و دیگری به معنای حالو قیز و لیلی قیز و لیلی اگر اون قیز و لیلی معروف عربی باشه مثل مجموع و لیلی و اینجا هم که قانه روه دیگه صد در صد میشه چی چی؟ مازی با هر اینجا همون اشکالات رو کرد بگیم باید مثلا قانه دیگه قیس و هم قیس و, و, و معروف بگید نیستن تا اینکه که بشه این رو به شکل حال استقبال درست کرد و یا بگیرم یه جور دیگه درست کنید بگیم اینی که نوشته اینطور بعضی اوقات اینطور درست کردن ولی به نظر این میان که این عبارت بگید عبارتیه که در زمانی که گفته شده بوده بگید زمانش زمان حالا این در همو زمانی گفته شده که خانه در اون زمان برای بوده, بوده یعنی هست اون زمان اسم کانه زاربن خالدن الان زنم توفه رو این دیگه مازی امرن بگید. مفهور اول زاربن مفهور دوم خالدن مفهور برا زاربن که کرده به مفهور اول که در از بوده مبتلا و امن کرد در خالدن زمانش هم زمان چیه آه زمانش آنها چرا گفتن تکیه کنه؟ گفتن به دلیل ایکی وقتی تکیه رو مثل چی میشه؟ شه؟ به یکی تکیه کرده به بایدش حفتش بیشتر می شه درست آنها ببینه دونه باقی برد جایه موضوعیش هست بعد یه تقدیر گره به یعنی الازی قبلن. چون مصمت بایدان لا، لام به معنای این یعنی همه این تقدیری که درست کرد la و هری اعمال خو قدر بزید. و این واقعاته و یک جمله شدتیه که کلش هست. حالا از کجا میفهمم این جمله شدتیه امشایی یا اخباری؟ از جزای شدت. جزای شدتش گونه اعمال خو قدر یا کون ب زمین اسمش مستدید. مستدید. مستدید. مستدید. مستدید. مستدید. گام می این الف لام الف لام چیه؟ بوصول. الف لام بعدش چی میخواد؟ جمله. ها؟ جمله می دیگه. پس این اسم فاعل که شبه فعله در واقع جای جمله نشسته. خب شبه فعل بعد جای چی نشسته؟ جای فعل نشسته. جای فعل نشسته. یعنی اگر ما اینجا فعل نیاوردیم بعد از الف لام موصول یاد بگیرید توی بود. اگر یاد اگر ما اینجا به چه دلیله؟ به دلیلی که الفلام هيكل حیکل بهش میگیم تو یه هيكن داری، حرف. یه معنا داریم محضور. اجد معنا بعد بعد فعل بیان، جفت بیان. اجد لفظ بعد اصل غیر فعل چون هيكل دیگر الفلام تعریفه، هيكل لذا بهش گفتیم پس ما بیارم. یه چیزی به تو میدیم که در و لفظ تو برابر باشه اسم باشه در معناش با معنای تو برابر باشه در لفظش و لفظ تو برابره اسم چون تو هم شبیه الف خام حرف اصیل که به قول معروف با اسم سازونه در معنا اون شبیه به با معنای تو که الف هستی با هم دیگه چیه میگه با این علم به من به الاسماء <سؤال> که و در و